الحمد <سؤال> لله رب العالمين وصلى صلو الله و سیدنا رسول الله و آله القیبین القاهرین المحسومین و همت دارمت علا عزای المتمنین اللهم فرمه جميع المشترین و حمده يا که آرحمه رحمی هرچید که دلیل دومی که غیر از آیات که بود اجماع بود که از این اجماع یه معنای شد بشه قبول کرد این معناه این روایت فرقاله ها معروض بوده سنتا و شیعتا و در حرسون بوده و همین که این روایت موجود بوده این معناه اینه که مثلا فتوای علما هم تبقیه روایت داد و لذا هم اگر فتوا به خاطر شعرت و وضوح مطلح بوده و بعدی که منتقل به فتحه هم شدن اونا همه فتحه هایی به قرمت دادن بی اینجوری که موجودش این مقدار اجماع به معنای این که کشف یک سیره بکنه حرف بلی نیست انتظارا باید قبول کرد که سیره متشبهه و علامت متشبهه همیشه این مزده یه بوده این جای شک نیست حالا اجماعی که بخواهیم اصطلاح خیلی مکتب خشخاش بگیداریم و بگیم از کلمات در میاد یک مقداری مشکل خصوصاً که یک مشکل دیگری در فجر ما داره آه. این در فجر سنت نداره چون بباید در خلیه ها در کتاب مشهور اهل سنت در حسانید متعدد داره در سری بخاری مسلم کتاب های دیگرشون آمده کتاب های معترار یک آمده لکن از اجایب کار اینه که بحث این که احفلده ها ما داریم شما بعدش ما متعرضه بحث روایات میشیم این متن احفلده ها از عجابی کار در خطه ما نه در کافی و نه در تحضیی که زیاد داره در اما در این کافی و تحضیی این دوتا تا آقایده نه ما در کرا مرحوم قدس الله بابی برای اینجا فراملون. روایه تحبلهیه در کافی نمیده البته بعد اشکال همین برزاینه دواست هبابه وادبیه یا هبابه یا هبابه یا هبابه یا هبابه وادبیه زنی بوده بنامه هبابی یا هبابه انگوشه بوده که همه اون بسیل انگوشهش هستی که در از زمان همه رو بمنی پیرده شد تا زمان ما همون جواد رو بمنس کریم و در اونجا در روایت هبابه وادبیه پس تعمیر می‌فرمند کسان می بودن که ویش رو می‌تراشیدن به سویل‌ها به کلوف می‌کردن اینا محصو شدن به بوزینه به ایمان خب این محصو شدن هم علامت و برمتی. این رباید تو کافی هست ها نه من حواسم هست نهید توی من حواسم کنم این رباید که حباب والویه پس حدوثا در کافی محص منفرده هم هست یه نداده بوده حبابه خب طبعا کار نبوده هم نبوده صدوق نبوده ش در کافی هست من که عرض میکنم روایت لگیه حلبه لگیه کافی نیامده اون متن اعفله ها این متن نیامده البته ما در وقت سابقی که متعرض شدیم توضیح دادیم که روایاتی که اعفل سنت دارن بیش از ما دارن و متونی که دارن بیش از ماست ما غالبا اعفله ها داریم شاید یکی گرد شده اما اهل سنت اعفو دارن وقت رله ها دارن بر مسئله اوفو هم دارن اوف الله ها ایفا از ماده ایفا مثل اوفو بله او اون هم دارن این شما در بحث و بحث لغویش معانی کلمه را عرض می کنن به همها خوب درکت کن اینقدر از اینکه چون در ما ها متعرض شدیم اما قبل از اینکه وارد روایات شیم، روایات در الله ها باش بین مسلمان ها به هیستی که اصالید متعدد از کتاب بخاری بیرین الاخرهی البته بامتون مختلف حالا با انشاءالا اشاره خواهم کرد اما در کتاب های ما در کافی نیامدیم من رو احلیت چیه نمیدونم بین بین اللها نکتهی رو حالا فکر کرده باشن هر چی فکر نفرم دارم چرا مرمون کنه این چون با میبینه آنوان قرار نداره البته چون مسئله لگیه یه خوب مستقلی نیم یا در فقر تو عباب خاص در کتب اصحاب ما هم عباب مختلفی آمده اصلا در کتاب فقید توی کتاب تهارت آمده کتاب مروم سال وسائل تو توی تهارت تو عباب آداب حمام آمده ادهی هم در مثل اهل سنر مثل ترمذی در کتاب خودش در کتاب ادب آمده ادهی هم در مثل بخاری در کتاب خودش در لباس آمده در در کتش ما عصاب ما ایده در لی و تجمل در باب زیارت انصافا اون باگی هم که این دفعه تو یک نگاه نیست نه پیش اهل سنت نه پیش ما جای مناسبی برایش پیدا نشده و خود من هم در اقوال اهل سنت خیلی با مشکل شد هم خیلی هست بنده من جور یه بار مراجعه کردن فعلا جای مناسبی پیدا نکرده بعضی از کتو متعرض شدن اما خصوصی رو گذرو نداشت نه بود حالا توزی هم خوبه اگه به مصادر اصلی چنان دشهر مراجعه بشه در این کتاب عقل من و بابی رو در انجام حالا خلاصش اینه که مرحوم کلینی این رو بابی ندوده مرحوم شیخ صدوق این رو باید در ابواب کتاب طهارو بوده شیخ توسی هم نیاوردن شیخ طوسی بیشتر نقطهش اینه که از کتاب کافی کرده شیخ که در صدق گاهی و اما همیشه نه این نیست اما متاثر کاملا به کتاب کافی زونجات آلاته شیخ کلی هم ارز اون ربایت غوابه و همغوابه غوابه دیگه و که نهی اون روایت و او اما تو کتاب رو تو اصول اونو دیدم شود اونم ساعتی ادلا برای انضمامت به معریم چون چاواغ بود که این از عم کرد و یکی که ابرو داره من انگشته داره روش امضا فرنده به مناسبه کتابونو که ایشون ورده گوشش بود دیانو و زیکاش بود کافیام بله هر تاصانی زیاد این بحث البته یک ریشه تاریخی هم داره که از اول بورژویی نارو می‌کردن حرف بدی هم نیست شعب هاشمی یک حدیثی در میان اهل خیلی معروف بوده حتی اگر از ائمه نرسته به شهرت او اکتفا میکنه یعنی ائمه رو امضا کردن به اصطلاح ائمه ما مثلا ائمه بیشتر تعلیق بر روایات قطاوی روایت ائمه تعلیق از بر روایات مثلا اهل سنت تقریبا به اصطلاح حالا نمیشه تغییر به تعلیقه و اینا چی این معنا هاشیه تعبیر کردن، نمیدونم بلا؟ نازر نازرن نمیدونم چون من شاید بیشان نبودم این حالا خلاصش چه طور که برای قربه تعلیقه می زنن جایی که با قربه معافلن چیدی نمیدیسن مخالفات می وقتی مخالفت اونجا رو برمی کنن بله اجمالش بد نیست تشکیف صحبایاتش مشکله اما مطلب بدی نیست اجمالش اگه نه اجوال شیما مگه در از قام معروف بوده متعارف بوده اما ذکر نکرد چون خیلی معروف بود این مثلا وقتی که می مشهور بین فقاه دین رو نگاه کنیم الانطلافش رو تا بکنی نمون خود مخالفت علی عامه یعنی روایت داره خودی شی روایت که روایتی شارح داره که در واقع مقابل این نه شارح داره بلی که چون مخالفی در شی از مسائل میاله نظریه قراره چی میگفته خلافش انجام اون خود مخالفت علی عامه در اون آمده فعن نرفش خلافه در اون نه دیگه آمده این تعلیق یعنی به اصطلاح میشه اون به اصطلاح مثل ازیه خارجیه میمونه مطالبی بوده که معروف بوده مهمول برمال امیرامون رو خلاف انجام میدهدن ظاهرش این طوره <تصفيق> بله درسته یک حدیثی باشه که جنبه های سیاسی توش نباشه احتمال تعلیق توش نباشه. و تا مشهور و معروف باشه حالا بعد اونجوری شو این عرف ها اینقدر مشهور نیست خیلی مثلا وقتی اضافه ما, ما لم يحمل حدث خیلی معروف نیست تو سایه بخاری نه مثلا تو بعضی از این اضافه لغن ما قلتین لم يحمل حدثا نمی شه استفاده کرد اما عرف الله انصافا معروفه یعنی انصافا صغرا باشه هم سهروا این حدیث در ها کاملا به این این قبول میشه که اون که لای یا از سنت که در شان این به واسه لغتشون از سال 6 هجرت اینطور ارجاء شده در سال ششم هجرت که نمایندگاه یه خصور پرگیز میان به پیش ارداد پیغمبر اکرم پیغمبر نسبت چون سال ششم تحیلید شده این و باید زمان داره از سال ششم البته قبل همه هستم از سالی که از مشرقین و قیلون تاریخی هم هست، همهشون ریش دارن لیکن با عنوان امرانی ربی که دیگه رسمن اعلام شد با عنوان یک صنات قولی خیل صنات عملی این از سال شش هجرته. تاریخ ش احفاله ها طایبش مشهر شواهد نشون میده که این کاملا جا افتاده بوده انصافه این ما قبول میکنه یعنی انصافش مطلبی که های بود یکی از مسادیرش منحنفیه اون الا بلقل ما قلطه این مصداقش نیست اما این مصداقشه از که این مطلب هم اجمالا این درست بوده یعنی چون در اون روایت محمد موسیم صحیح هم است به ما واقع را عرض میکنه که چطور میشه شما مثلا مطالبی میفرد ما گای آباد از زبان رسولا افرادی نهارو میکنم و اینا را متهم نمیتونی سرد و از شما خلافشی میفرم امام میفرد اونا دروغ گفتن امام میفرد اینا در حدیثی آن سرک امام از سفر بران اونا مثلا منسوخ گرفتن ناسقه نگیدارسن تفت میکنی اینه اصل این مطلب که اگر سرات و مزرگات چون بعضی احادیث اونها اون محل کلامی حالا من در خلال در این بحث حرض می کنم بعضی احادیثشون محل کلامی یعنی در بابر نهی حالا احتمالاً هم می کنم یه تبیه به شما در دواره داشتن مثل بعد از این بحث اقوال آمنه باید می شه بحثی که در این آمنه هست احفله ها که ثابت می دونم این مسئله یه قبضه در دواره دواره ما هست که بیشتر یه نشه. این تأدیر کوتاه کردن یعنی راه نکردن راه کردن بعد تا یه فبزه بعد کوتاه بشه این رو بهش در زمان حربی حرب مردون نمیگفتن قصف نمیگفتن قصفگاهی نمیگفتن که بیشتر عرض روزه که ما کوتاه کردن از حربه این از تراشیدن خب اینا نهاتایی پیغمبر فرزور که فعالهی بکنیم بعد از عبدالله الله بن عمر نعر میکنه که طوری قرضه میگیرم ظاهرهش که عهده ان از الله که خود اهل سنت یکی از احذلهی از رسول الله نعر کرده مشهور نیست قرض هم چی نیست من رو به تلفیشه میخوان که اهل سنت هم عهد دارن در کتاب ترمذی هم آمده میشین تذکیه هم داره اما مشهور نیست یعنی خوب دقت بکنید حدیث ار خلیه ها انصافا حدیث معروف و مشهوریه اما حدیث که رسولا هم خدمه لحیته این خیلی مشهور نیست نیخونم سنده شده بحثش می اما همین حدیثی که مشهور نیست این طور باید ما آمده توجه شد نقطه؟, نقطه بندی روشن شد اونی که مشهور نیست اون طور باید ما آمده که کارنه محاستاده یه خودون زهیت مازاده علاقه بزیاده. اون طور روایت ما آمده این طبیر وقتم آمده این طبیر وقتم آمده اما در میان احل سنت حدیث اخذ رو به رسول الله نصفت دادن مشکورم نیست اما طور روایت ما آمده حدیث احفایلهی رو به رسول الله به اصحاده متعدد نصفت تو روایات ما آمده اما سرم نداره یعنی در کتاب کافی و کتاب شیخ سوسی ن در فضیه هم دستور مورسل آماده کرده اند انشالله مطرح داشته این یک بسته اجباری بوده یا شش دنبال بسته اول بعد وارد میشیم. راجع به فاتحا در میان اهل سوندگان که الان احکام و مبنای عبارت عصر که از وال اربا نامی شده، هدفش من خودم صبر وقت نکردم، خودم صبر نمیکنم این کتاب نگاه کردم و در این کتاب اینطور نوشته بود. اتبارات مزار وال هلی حرمت هر قله انه که من خودم و کتاب دیدم من چند بار عرض کردم الفق المظاهب اربعه کتاب خودی نیست یعنی کتاب علم نیست خل قابل ارزش علم ندر مرادش از مذاهب مظاهباربعه بیشتر مذهب مالکی ست نه فتوای مثل مسل کسی کسي فقه امام صالق بنویسه وخت فتوا مثلا شهیدالثانی و شهیداول نارا ی چیز شدیح اینه فقه مالکی است نه کلمات خود مالک فقه همبلیت نکره خود احمدت نه یعنی اون که در همبلی بعد از مثلا هزار رو از که مثلا 100 سال آمده سال چون ایشون دو, دو مشایخ بود عبدال احمد جزیری، و مجموعه حق و اصلاحی که در مذهبه احمد شده ایشون برگرشه به اسم هنابله نسبت داده نسبت داشت نیست علمی نیست پخته نیست اما خب هست اما این عبارتی او این که اینجا الان آن هست که از هم یه عبارت نهار کردن این عبارت تبکی که بین شافیه و این شافیه ها گذاشته اما اونی که تو ذهن من هست را آن اگر کاب داشته باشن شاید پیدا کنه توی یک خیل مذاه خودم دیدم هستم مراجع خودم مراجعه کردم این از ایگال یکیسی نهار کرده بود مرموم آیا امینی هم نهار که به لیه اما در این جلد دو صفحه 44 کتابی رو به نام حلال و یعنی حلال و حرام قرار داده در اینجا که بین عقوار شده نمی‌شه و بعد نگاه قال شافعیه و, و, حلقا ها. و فی ها هم تراشیدنش هم کوتاه کردن خیلی کوتاه کردن تیر نزنه به اصطلاح ماشین بکنه خیلی کوتاه خیلی عجیب تبیر هر و مبالعه به قفصه ها در این رساله های فارسی توژیو مسائل هم که نوشتن. نوشت آن نوشتن همون در حالتان یوروستان نوشته شد اونجا جام عبارد اینه ریشتراشیدن یا آنچه که به حکم ریشتراشیدن این مبالعه ای به قفصه همون فارسی خودو باز یعنی هر اصطلاح هم با تیر یعنی به آلت وسیله‌ای که تیز باشه روی یه بکشن از اون اصل دشاره زیاده بکنن این از اصطلاح حضر میه اما اگر ما خود مو رو ببنن و خیلی رید باشه او رو میگن یا قصد میگن اصطلاح دیگه بکنن ایش تراشیدن یا خیلی رید کوتاه کرده که به حکم تراشیدن باشه، خیلی تحبیق هست که ازازات از از قبضه فیرمال خصوصا ازاترت تبرعه تشویحان در سلقه اون تحریزون به اون نهرزون موجه بگنامی بشه هستن از شافیه ها نهر کرده نشد من من ایشیز رو مستر شافیه دیدن که از شافیه ها نهر چرا کراهتون و اهل حنفیه الیحر و محل با حیط و یو سن و مستحب و طولها تذیده بیتوله قبضه از کرا بحث قبضه رو در روايت خودشونه از رسول الله ندارن از صحابه دارن بله از رسول الله کوتاه میکردن این مقدار داره تمام زاده علالقصه کوتاه است پس یعنی اصلاح میشه کوتاه میشه ولا اطراف و لا راکه به اطراف اثراف و شعب هر شرلی تحت الکین موی زیر بغل هم اشکال نداره خب این که واضحه حتما ترجمه میکنه میشه هر که شعر چون از کردن در روایت ما هم هست در روایت هم هست راجب به مون که زیر عنوان نقص داره نقص خلی افت یعنی در خب این دردش میراد مون بخواست درشتی دردش تو روایت داره که افت نقص نقص مقده از افت که خیلی مقایدن اصراحشون دیری که اون که نه. اگه بخواهد با تیخ به درشه ولی دارم از احمد هم نهر که ایشون بیتراشید به گفت نه سنده همون چی چیزن من تعمال ندارم نمیتایی در ماردیش در ما تطریح شده که مراد نهست نیست هر هم اشار نداره تو درواد ما اون مقدسوازی مرادی نه نهباشون فقط هم نهست مسترم نهست این اصطلاح هم هنف و هر شرالی که تحت رئیس میخواد هم نو این با نه سیکی و نه یه استدیویی جناب و تو سنگال موبالرپ یک قصد شاره قصه شاره به هم خوندی که در هست. و هنی مالکیه یه حموم و سن نحلو شاره و هنر حنابله یه حموم حمل ولا ولاد به آخر مازاد کوتاه بیشتر از قبضی اشکال نداره فلا یکره پسو همه حالا یکره ترگو اما اگه بیشتر قبضش شده اشکال نداره میشه هم نگه داشت همیشه قبض تو مازاد هم ها داره مازاده قبضه ففه یک و یکره ظالم و که داره یکره و احول ماه کنان بعده الاخرین این هم اونی که تو من ذهن من هست اتنه همه مزا همول عربر او با من هفته همون اینجا به شافیه ها نسبت کراهت رو داشت البته این هست سابقا هم من اشاره کردن بیشه باز این کتاب الام شافیه نگاه کردن پیداش نکردم. کردن یه ده هفته الام من دیده بودم این محجب باید تو نظرم تو هاشیش در واقع اختلاق و مالک با چی تو هاشیش چیزی بودن در نظرم که این یک اصطلاح پقاهی در اون زمان بوده و خلاصش این بوده که اگر یک حرامی از سنت پیغمبر ثابت بود تعدیر به یکره میکردن اگر به کتاب ثابت از رو به حرام میکردن این اصطلاح فوقه هایی بوده نه اینکه یک نقطه خاصی میخواستن فوقه ها این اینطور بگن اگر چیزی رو با سنت پیغمبر تحریم شده بود میگفتن یکره این یعنی حرام اما اگر با کتاب بود میگفتن یکره این شاید،, شاید نظر شافیه ها این بوده این تصور بوده که مثلا اعفا الهیه و حرمت حضر الهیه جز فترت الله جز فترت بیشترس ابراهیم قرار داده ملت ابراهیم بوده پس این با کتاب ثابته یا نه این جزب ابراهیم نبوده در قرآن نه یا مثلا در واقع پیغمبر اکرم این, این کار کردن چون چاپیا؟ ها که این کار پیغمبر بوده این تشریف تشریف پیغمبر بوده یکرم بیمانم عمله عرض کردن این مطلبی که ایشون گفته درست و قید از این, از این مطلب نهزه اشاره ما هم داریم در کتاب عطم امام عشقه نگاه بفرمید امام مثلا این نوال حرام ما حراما کتابه حرام که در قرآن آمده و این نماکا نه یا آفون نه اشیا یه رو قبول نداشتن افراد نهنو نه آفا این ترک اسمش یکره گفتن ايدا به واسه ما هم بهش اشاره شده که یک اصطلاحی بوده پس این من که در واقع این میدم که این یوکرانی گفتن اشاره به اما با اون تتبعاتی که ما کردیم گاهی اوقات این بحثی که نگاه کردیم یه حکم یوکرا هم داشت شما در حرامه و سنت واضحی هم در کار نبوده اونجوری که من بهش نتیجه که من بهش اعتمد کردم ایراد کلامی که نرم کردین یکی از مواردی که اینا یکره میکردن در حرام جایی بود که دلیل بود لاکن دلیل مناقشه انگیز بود یکی می گفت ن روایت ثابت ی می روایت ثابت داره ک م روایت دلالت نداره. بحث بود اینا در این در این جام تعبیر به یکره میکردن دقت میکن به جای تعبیر به یهرم تعبیر به یکره میکرن. که مراد حرام بود لاکن چون احتیاج داشت به استنبار نه این که ایمنه. این برد یعنی یعنی یه مسئله یه که صاف صاف از یک گلسان دلیل در بیاد مجموعه به اصطلاح پناسه باید می بود تا اون روایت درست بدونه سندش، متنش دلالتش تمام جهادش اون اگر ثابت میشد حرمت در می آمد. این حرمتی که اینجور اثبات میشد از تأبیل می این تأبیلی به یکره می کنه این موارد به ذهنم این میاد. یه در موارد به ذهن انسان میاد همون اصطلاح احتجاز وجوبی ما بوده به ذهن من اینطور میاد که همون احتجاز وجوبی چون این تغییر احتجاز وجودی که انسان مثلا یا باید عمل بکنه یا به مشکلتی برگرده زادش اگر میخواستن به جه تربیر به احتجاز وجوبی تربیر رو به یکره میکردن یعنی این انجام نده و شبیه این تربیر رو من چند بار ارس کردم. در دو سه ما داریم از امیر المومنی که اعجاب زنهاست با به نکاه از امام صادق می فهمن امام می فهمن احلت خواه آیه و حرمت خواه آیه رعنه مندده کن انها نفسی و اهل بکی مثل آیا نسان می دو تا خواهر رو مالک بشه نه نکاه شون هیروباره که الان که او میاد اون نکاره، هرگز نکاره. اما ماندگاره به. و سوند خونه داشت خاره، سوند خاره که ایش خونه داشت این معلق کلام بوده که میل که دو سخا خواهر مثل نکاره دو سخا یه در نوار رو ما دیگه سپندن که اهلت ها آیه و حسب یک آیه حلال و حرمت ها آیه. و آن مناظره ها نفسی و اهل لیکن من انجام نمیدن این ما به نظر ما همون احتیاط وجوبی ماست ما همون اصطلاح من وجوبی انجام... من احتمال میدم بعضی از موارد کراحه که در روایات ما از ما مصادق آموده یعنی این روما از همین قبیل احتیاط وجوبی باشه که طبیعتا ما اونا رو حرام باش معامله حرام می‌کنیم. به حقیقت یک نوع احتیاط وجودی به همراه میده این سه موردی که به نظر ما از مجموعه یک موردش رو اصلا در کلمات رواه در بحث رواه در کلمات اهل سنت اومده دو تاش خود من انجید با شواهد ذهنی خودم رشیده انجام داد این واجبه عقواذی که حالا این چهار تا قضیه مگر این دیو خری شاطری ها اون مقداری که من دیدم کسان که متعرض مسئله لحیه شدن خرمت حرق بوده و مخصوصا اهل سلمت اون حدیث ارخولده ها قطعا پیشون ها ثابته و قطعا هم موجهده این جگرد نداره این راجع به محصه اجماع انصافش اجماع مصطلح رو باید به زور درست کرد خیلی مشکل داره و محصه هم واضحه حدیث ارخولده اون هم خیلی واضحه که محصه شمه اما یه اجماع شاید بتونه برای ضعفهایی که در برزر روایات هست جبران بکنه اثبات ارتکات هم اجمالا باش میشه کرد هر بودی نیست و اما بخش ثمان بخش روایات هجموعی روایاتی که ما داریم مجموعه روایات هم که ارز کردم در کتاب کتاب اصحابی که ما داریم این کتابی که آن در اختیار ما هست لحاظه کتب اروره اولین کتابی که داری کافیه که چون حدیث حبابه والبی رو دویزه کنار چون محض مشهور حدیث احفالله ها ایشون نداره احفالله کتاب کافی رو باشه بردرسی کنیم میمونه روایاتی که احفالله هاست که این احفالله هاست که به این احفالله هم عرض کردیم کاملا محروف و مشهور و آبه به یعنی بحث نیست که روایت محل اشکار روایاتی که ما داریم یکی از کردم اونی که ما داریم روایت در صدوق صدوق در کتاب تهارت این رو ابرده آقایون اگه به وسایل مراجعه کنند. در کتاب وسائل در این چاپ مرموان رموانی جلد حقود عبواب آداب الهما این رباییات رو باب شست و هفته و از آزا همه هم داریم فاضل با ما آورده. اما اگر آیان مراجع بپرماید اشون در قیل از باب شست و هفته چندین باب دیگه هم ربایت ما نازر داره اون ترسال این کتاب نیامده من اینشالله تعالی مجموعی ربایتی در رسائله می کنیم چون اشون نافذ نهر کرده فرقش شباید رسائل جل دیگه که چاپ قریه نیزم داری چاپ قیل آنه به جلده دو شده یا احتمالا دو شده باشه. و هر حال در چاپ مروم های عربانی جلده یه که فردان از خون کتاب وسائل چون غیر از باقه 67 من ارز کردم وسائل ای یک مشکلی که داره یکی از حالا مشکل بسیم شد زندگی داریم گاهی چون ابلاب شو خیلی کتاب آورده گاهی یه روایت که دو تا یا سه تا حکم داره که یک باب میره، که اون بیان که مربوطی به اون هست دیگه اشار در محضور در خب این یه روشی دیگه برای اصلا ادنه هستن که هستن مثلا بخواد حدیث جمعالی بکنن کل مایت علق به لحی یک دیگه این عبا متفراز نمیشه. اما صاحب, صاحب یکی شوجه به عهد یک یکی یک یکی به هر لحی یکی یک بابی. هر کدوم با رو تو صرف این که گره کتاب و ساید یک باب باید با با میشه مراجعه کرد نقطه شویز کردن عنوان بابه مثلا شما اگر وافی رو نگاه بکنی یا به ها وافی باید و باید مثلا چیتر چه این تا حدیث دارد چه این باب. بابش دودانیم و یکی از افثار این ترامه از این کتاب و ساید قیلت کتاب عربان داره وافی در مراجعه ما به فکر خیلی مناسب نیست مثلا توی یک چه ب به قصد میکنه اما همون چه سنوازتون و سایل در شیش باب بیان این فرق بین کتاب و سایل و هوافی به اینکه از اصرار کتاب و سایل تو حوضه های ما متعاره تر شد مثلا باب هرگولهی با ها بذاره این باب هرگولهی با یک جاست یه باب میداره باب هرگولهی نظریه یه باب دیا بوله اما میکنه از درکار من اینجا به چون بابی نگاه نکردم هرمه یک جا میره. و يا طلب بلخير يچوگره تراكم این برای کارهای فقهی این راه و وسایل خیلی تره خیلی مرغوب‌تره تره خاص ان شاءالله به جاهان حال چیزی میشن در ذهنشون باشه در وسایل در باب شرفت ابواب ابواب و آداب الحمام و من ایشان بعداً ان شاءالله از کتاب فضو قاضی رسول الله خوب و شواره از کلم راجع به شواردم منطور مختلفی داریم احفو داریم حفو داریم قصو داریم قصو شاره داریم،, داریم و بحثی شدشیم و احفله ها ولا تشبهو به یهود اینشالله این محس رو هم میخونیم. این من در مسادر آمه هست و تکت کنم من فقط این اشاره یه به شما عرض بکنم در احفله ها یا در قصو شوارد سه تا ض آمده به میکن سه تا ض یک ض و لاسه شب به به یهود. در مساد ما این مرسلی در از خقی هست. اما تو مساد ها را که بر دو و تشب به او به مجووس. این لاسهشب به او به مجووس؟ بله. در مساد ما، در کتاب باز وسائل همین با اوورده از صدوق از محانه اخبار صدوق در میخونم این دو تو مصادرها آنه هم هست مثل خالق و محبیوز این دو سه ورا تشبه هم به مشرکین این هم این محبش این مسئله ریش سه تا مخالف داشته <تصفيق> یه یهو یکی مشرکین بوده یکی هم یهو مجوس در حالا این رو چون من بعد در مگه است معنا آور میکنم. حالا فعلا متوجه نشدم به هست بوده. یک یهود داریم. باز در کتاب خود صدوق در نام و صدوق ولا ولات شاید به مجوس داریم. اون هم داریم. حالا تأیید اون هم داریم. و در کتاب عروسشن داریم خالف تو المشرکین رفت و اللها و احف و اشعاره این هم از البته این قیل از این حاله حالا این تفسیر حدیث چه خواهد بود یک نقطه هم از این حدیث استفاده میشه که این خودش در یه مستقلی قرار از حقایمان در یه خلاصی اون دقیق مستقیقی که از عدلی بر حرمت حلقه هم همینه اصلا تشابه خوب نیست و کفا این اصلا یکی از احتمامات پیغمبر برای بود که تشبه نباشه در یه اینجا تشبه به یهوده اینجا تشبه راجوسه یک جا هم مشرکیه این راجبه مرخم که بعد اینشالله من اشاره میکنم که ذهنزون از باشه برای نفله و اما مسئله این سند دره بود خب, خب محلوم سند مرسنه در کتاب صدوم آمده این که گفتم که اگه صدوم چون جو گفته قال رسول الله این مطلب در عبارات ایده از علماء آمده ارز کردم صابقه نم حالا قرنیترین کسی که این مطلب رو گفته کیه من نمیدونم در ملاقه شیعه چیست کسی گفته فرق از روی انستاده یا قال از ساده در کتاب صدوم این من الان قائلشی نمیدن اما در این ما خود اون در, مر... در کلمات مرحوم آشان و کریم قائلی دیدن ایچه هم داری شاگیر ایشان مرحوم های خومهی هم دارن در چند جایشون تو رسال لادرگانسا در اونجا هم دارن مرحوم آشان و کریم در رسال در سلاتشون دیگن چند جا دارن ایشون که اگر قالت صادق سندش معتبر گره رو بیاند صادق و ادنی هم گفتن من فارغ نمیکنه رویه فرقش اینه که رویه اگر باشه ظریف باشه، باشه، صحیح محترم. ما توضیحات کافی رو دیگه هست کردیم. که دیگه تکرارش نمی کنیم بحث همینجاست. حصر کنیم به لحاظ که بر صدوق داره همه محترم. چون رو که جمعی این لزوم داره ایشون خود صدوق چند تا رو رد میکنه. یک جاهای حیثی که بحاضر بر... حیث لاوفیده، اوف صدای حتی یک حدیث در عبور جلد سر یا چهار شد باشه از محبوب کلین هم میکنه میگه به عقا و عبو جلد کلینی محمد ابن عبور من میگه آنه به افتی به حدیث دیگه یکی سفر طوقیعن از امام حادی و ما از خلی مخصده پایده در مخصده دیواجه خود دقیق اون چه که در کتاب فرقیه مگر خودش تفریح بکنه به استثناء تصریح خودش اون چیزی کتاب دیوانه است اون چیزی که قابل اعتماد چون بعضی‌ها نگفتن خب گفتی در مقدمه که من همش آثار صحیح بعضی‌ها خود عمل نگردن یعنی خب اینجا مشخصه مقابل متکلمی که الان به میافتن درسته ایشون متجاهر نشون شد اون که قدمی بیاره ما از خود کتاب صفی دو مورد رو خارج کنیم کل کتاب صفی یک جایی که خاص این خودش یه گله که گف که یک استعلامت اون پایغه که معصوم تایم ما انا که مش شیعه از امام صادق باقر السلام ما کوکلی شیعه علامره کی گجک باشه که ما بنده اعتبا داشته مینه مثلا در اواخره نکار داره نواد و باب ب به این سبب اونها اون تاوقی که تموت داره میشه اخلاق نمیگه ذکر کنه این دو مورد از کل کتاب فقهی دو مورد نشون من قابل استدلال نیستن اون دیباچی شاملش که. شد این بحث دقیق رو دقت بدارید یکی اونجایی که خودش میگه من به دو چون در اواخر بعضی از ابواب از مثلا کتاب نکار یا طلاق چند تا حدیث داره به عنوان نکادر پس مثلا بعضی از اون خود خودش خود این نظر خود پس این دوباره استثناء برای این کتاب قابل اعتماد. یعنی چه قابل اعتماد؟ قابل اعتماد به لحاظی بیشانیه، هوگیری. یعنی نه به لحاظ ما. فرقی نیست رویو عال ساده ام نمیکنه. یه مکان. محضب... این اگر آیا خواستن، این است نکته دیگرش از کنگو. فی این مکانی است که داره از خود ما یاد می‌شوند مکانش ما، ولی الان می‌یزد. تو کتب ایمولا حدیث درات الهدی سریزونه. یه بحثی گرفتند در کتاب بخاری غیر از احادیث موثق این نوع احادیث و رویه ان و با ان رسول الله داره و بعد جون که قال رسول الله اینو سننیو داره همین مثلا بالو اوناست که اگر بخاری گفت قال رسول الله اینو معتبره اگر گفت رویه یان رسول نشکار داره پوشش بده اصل مطلب مال اوناست حتی به ما نداره اصلا دو معناست تو خصوصیت اینطورش میواد علای شد. این بیده شد. دیگه دیگه منو اصلا کم حوصله نشون دیدی شو دیگه منم اون کسی کی حامل رابطه بین ما و سونیا چی بودی را نمیفهمم یه چیزیونه حرف سونیا رو سبک بوکاری بوده گفت چه می‌دیده دانشامده رو تفیق تفیق کرده اون یک از مبنای رجالی حساب دارید یا این یعنی مبناش مبنای دیگری حساب دیگری این عهد و حمار رو به دیگری قیاس نمیشه روشن شد من دائما نگاه کردم چون چند بار این بحث رو کردم باید نظر اختلاف میپرن البته قال رسول الله به نظر ایشان حجت اما این برای ما کافی نیست تا چنین شامل ان شاء چون راحت تر در میاد با حدیث خودی دیگه الله